هزار افثان نام خدای یگانه مهربان سلام. آدمیان افسانه ها رو دوست دارم. شاید به این علت که افسانه ها به دوران کودکی بشر تعلق دارن. واقعا هیچ بهتر از افسانه ما رو با پدران و مادران باستانیمون پیوند نمیده. وقتی افسانهای رو میشنویم یا اون رو میخونیم انگار سال هاست با آدمها و سرزمین ها و ماجراهای تلخ و شیرین اون آشناییم. راستی راز افسانهها ها در چیه؟ در برنامه این هفته هزار افسان، افثانه زیبای قوی سفید رو از مردمان سرزمین روسیه براتون نقل میکنم، برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا، با ترجمه از فتولاه دیدوان روزی، روزگاری، پیرمرد ثروتمندی با همسر و تنها پسرش زندگی می روزی از روزها پیرمرد به پسرش گفت پسرم، ما همه چیز داریم زمین، گله، خونه بزرگ و فقط یه عروس کم داریم اون رسیدی که همسری بری تو انتخاب بکنیم پسر سر به زیر انداخت و گفت هرچی شما سلا بدونی و خلاصه اونها برای پیدا کردن یه عروس خوب به روستاهای زیادی سر زدند. اما دختر مناسبی رو پیدا نکردن. گای مادر از دختر خوشش نمی اومد و میگفت دستای این دختره خیلی سفیده معلوم کار کردن بلد نیست. گایی هم پدر غور میزد که این دختر که جهیزیه نداره به درد پسرمون نمیخوره گاهی هم خود پسر افسانه ما دختر رو نمیپسندید و میگفت اه چه دختر زشتی نه من دوست ندارم همسرم اینقدر زشت رو باشه. روزها تند تند میگذشت و پسر هنوز همسری رو انتخاب نکرده بود پیرمرد در دشت دوری ای داشت که محصول جای خوبی داده بود اما قوها مرتب به کشتزار می‌رفتند و از جوها می‌خوردند پیرمرد که سخت عصبانی شده بود به پسرش گفت پسر جان باید توی کشتزار دام پنگ کنی و قوهای مزاحم رو بگیری اونا تمام محصول ما رو خوردند. پسر هم رفت و توری توی مزرعه پهن کرد و خودش هم پشت بوتهای مخفی شد و منتظر عومدن قوهای مزاحم موند چند دقیقه بعد سر وکلهٔ قوها پیدا شد هنوز روی زمین ننشسته بودن که متوجه حضور پسر شدند یکی از قوها فوری فریاد زد خارا خارا زود باشین فرار کنین یه نفر پشت بوته هاست اوها به آسمون پرواز کردند. اما یکی از اونها به حرف خواهرش توجه نکرد و گفت من ترسی ندارم یک کمی جو میخورم و میام و قوی کوچیک همین که به زمین نشست پاش توی تور گیر کرد در این موقع پسر از پشت بوته بیرون اومد و همین که خاصقور رو بگیره یه دفعه گوی کچک به دختری زیبا تپیل شد که گردنبند مرواری گردن داشت پسر تور رو جمع کرد و به همراه دختر که اسمونو یوکتالچه گذاشته بود به خونه برگشت پسر به نزدیک خونه که رسید فریاد زد پدر، مادر، بیاین یکتال اومده پدر و مادر با شنیدن صدای پسرشون از خونه بیرون اومدن و کنار پسرشون دختر زیبایی رو دیدن که به اونا لبخند میزد مادر با خوشحالی از پسرش پرسید این دختر زیبا کیه؟ از کجا اومده؟ پسر جواب داد این... این یکتالچه عروس زیبای شماست مادر مادر با خوشحالی گفت وای خدای من بالاخره عروسی رو که میخواستیم پیدا کردیم اون وقت نگاهی به دستای قرمزون انداخت و اضافه کرد آه از دستش معلومی که اهل کاره پدر هم که چشمش به گردنبند بند مروبارید خیره مونده بود گفت بسرم عروس خوبیه هم جهیزیه ارزشمندی داره هم زیباست و هم به قول مادرت اهل کاره خلاصه یوکتالچه، عروس خانواده افسانه ما شد از فردای اون روز صبح که میشد پیرمرد فریاد میزد: آی یوکتالچه، بلند شو به حیوانات غذا بده زود باش هیزو ما رو بشکن و آب بیار منم تا کارا تموم بشه یک کمی میخوابم پیرزنم میگفت آه یکتالچه بخاری رو روشن کن نونا رو بپز نهار رو هنوز آماده نکردی؟ تا تو این کارا رو تموم کنی من منم یه, یه چرتی میزنم شوهرشم میگفت عزیزم بیا یه کمی بر من آواز بخون خستگیم در بیاد. یوکتالچه بیچاره هم از این طرف به اون طرف میدوید و کارها رو انجام میداد و همه رو راضی نگه میداد. فصل بهار از راه رسید و موعد کشت و کار فرا رسید پیرمرد به عروسش یک دستور داد که آی دختر زمین رو شخ بزن و بازر بپاش و بعد هم اون علف های حرز رو درو کن بجم که خیلی کار داری پیرزن هم دستور داد یک تلچه یک تلچه کجایی دختر؟ بجام جالیز رو بیل بزن آه شلغم ها رو هنوز نکاشتی؟ حیوانا رو چی؟ نبردی؟ چرا؟ شوهرش هم میگفت یکتالچه ی من اون پیرهنی رو که قرار بود برم بدوزی چی شد؟ یکتالچه ی افثانه ی ما تمام روز کار میکرد و شب از شدت خستگی دیگه رمقی نداشت روزها به همین صورت میگذشتن که یه روز یوکتالچه رو برای آوردن آب به دریاچه فرستادند. دریاچه دور بود و آب شیرینیم هم داشت. یوکتالچه کنار دریاچه نشست و به فکر فرو رفت. یه دفعه هوهای رو توی آسمون دید. با خوشحالی از جا بلند شد فریاد زد. آی آهای! آهای! خواهرای من! من اینجام! من اینجام! و برای اونا دست کنده. اوهای سفید با دیدن خواهرشون به زمین نشستن و شروع کردن به خوندن شعرهای غمن ییزه. خواهر بیا هم راهمان پرواز کن در آسمان. مادر دلش شد قصدار از بس کشیده انتظار. شبها نمی پدر ای چشم می دوزد بدر تو بر نمیگردی چرا پرواز کن با ما بیا. یوگتالچم، با ناراحتی در جواب خواهرش می گفت ای خواهرای مهربون من نادانی منو ببخشید کاش کاش به حرف شما گوش میدادم و همزمان با شما پرواز میکردم کردم و اینجور اسیر نمی شدم ولی حالا برای رای من هر کدوم از شما پر پروازی رو به من بدیم خواهرای یکتالچه یه کوچک هر کدوم یکی از پرهای خودشون کندن و به خواهر کوچیکشون دادند یوکتالچم پرها رو زیر پلی در نزدیکی درگشه مخفی کرد و آب رو برداشت و به طرف خونه بهراه افتاد یکتالچه چه ما وقتی به خونه رسید شوهر و پدر شوهر و مادر شوهر با عصبانیت سرش داد زدن که تا حالا کجا بودی ها؟ رفته بودی آب بیاری یا اینکه واسه خودت بری گردش و تفریح و خوش بگذرونی؟ بگو رستش بگو یکتال چه گفت آب دریاچه چه گلالود بود صبر کردم تا صاف بشه بر همین طول کشید همهٔ اعضای خونواده قرولون کنن یوکتالچه رو تنها گذاشتن و رفتن و یوکتالچه بیاد خواهرانش و پدر و مادرش آروم آروم در خلوت خودش اشک ریخت فردای این روز باز هم یوکتالچه برای آوردن آب به دریاچه رفت و دوباره خواهرانش رو در آسمان در حال پرواز دید اونا باز هم برای دلتنگی پدر و مادرشون برای یکتالچه اشعاری رو زمزمه کردن و از اون خواستن که همراه اونا پرواز کنه. و این بار هم یکتالچه از خواهرانش خواست تا هر کدوم پری رو برای اون بفرستن. ای خواهران خوب من، گوهای ناز سفید، با یک پر زیبای خود مرا یاری کنی. و هر کدوم از غوها برای خواهر کوچیکشون پری فرست و باز یوکتالچه پرها رو زیر پل کنار دریاچه مخفی کرد و ظرف آب رو برداشت و به خونه برگرد. یوکتالچه به خونه که برگشت باز هم مورد سرزنش هم سرش و پیر مرد و پیر زنگ رو گرفت اون دیگه تحمل این ملامت ها و سرزنش ها رو نداشت اما چاره جز تحملم نداشت فردای اون روز باز هم یوکتالچه برای آوردن آب به دریاچه رفت و از خواهرانش پر پرواز خواست و گفت ای خواهرانی که در حال پروازید لطفا برای من یک پر بیاندازید. یاری کنید اینجا تنها نمانم یک لحظه دیگر در آسمانم من و هر کدام از قوهای سفید برای اون پری انداختن یکتالچم همه پرها رو به خودش بست و به شکل قوی سفیدی درمان او یه سفید بالهاش رو بر هم زد و به همراه خوهرانش به آسمون پرواز کرد توی خونه همه در انتظار بازگشته یوکتالچه بودن مادر به پسرش گفت هیچ معلوم نیست این دختره کجا رفته یه آب آوردن که اینم دول نمی پیرمرد هم با عصبانیت خطاب به پسرش گفت باید این عروس بیمسئولیت رو حسابی تنبیه کنی به بعد ادامه داد زود باش زود باشون شلاق رو بردار و برو کنار دریاچه خوب ادبش کن بد بیارش اینجا پسر هم شلاق رو برداشت و به کنار دریاچه رفت از دور چشمش به کوزه آبی افتاد نزدیک شد اما یوکتالچ ر و ندید دسته ای از قوها در آسمون پرواز میکردند اونا یک صدا میخوندند خدا نگهدار ای آدمی زاد غوی سفید از دست تو رفت شد شاد و آزاد او را نوازش نکردی اما دل او را شکستی افسوس خواهی خورد و تا موقعی که زنده هستی خصه خواهی خورد پسر نگاهش به آسمون بود و ناباورانه رفتن یکتالچه به همراه دیگر دیگرگوها نگاه میکرد بعد به سختی به گریه افتاد و ساعتی بعد بدون همسرش یک ترچه به خونه مرگش. افسانه زیبای غوی سفید رو از سرزمین روسیه براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه از فتولاه دیده بان ها فکر و اندیشه ها رو پرورش میدن و در تقویت و قنیسازی افکار موثر و تأثیر گذارند و راه رو به ما نشون میدن هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور پور ویراستار بهاره گیویان اجرا مهران دوستی صدا بردار راحله قفاری تایپ کننده زهرا عبدالله زاده تا سلامی دیگر بدرود